ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است ببین که در طلبت آل مردمان چون است به یاد لعل تو و چشم مست میگونت ز جام غم می لعلی که می خورم خون است ز مشرق سر کو آفتاب طلعت تو اگر تلو کند قادم عمایون است حکایت لب شیرین کلام فرهاد است شکنجه توره لیلی مقام مجنون است دلم بجوی که قدت همچو سرو دلجوی است سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است دور باده به جان راحتی رسان ساقی که رنج خاطرم از جور دور گردون است از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز کنار دامن من همچو رود جیهون است چگونه شاد شود اندرون قمگینم به اختیار که از اختیار بیرون است زبی خودی طلب یار می کند حافظ چون مفلسی که طلبکار گنج قارون هست